که در موادس درمه اوگه بشه این از ابدعات انسکار رسیمت میشه قردشون هم هست نیمی در های ما در خوضاهای ما از زمان ایشان رسمی شده از شد که مرموم و هم مساله به شیخ رو به سا دسته بندی کردن و خلاصه بحثی راجبه هم دلالت و دلات تصدیقی به نحن مراد استعمالی و تصدیقی به نحن مراد جدی رو افرق کردن و ظاهر عبارات مرحوم اوستاد خجیت ظهوره یعنی کلام باید به حد ظهور برسه تا حجت بشه در مقابل این خجیت ظهور ایشون یک قول نهار که آیا زن به وفاق میخواد زن به خلاف نواد باشه این تفسیر رو همیشون نقیل کرده مرموم استاد تفسیری هم از مرموم محقق قومی که من حسد اکامه زواهد حکم و حجیت یه تفسیری هم از اخباری ها که تفسیری اخباری ها این خلاصه بحثی بود که مرموم استاد در اینجا بود اول ایشون تقریبا می که عمده مباحثی رو که مرحوم در رسائل مفرح کردن ایشون او بردن عمده نحوه کاری که مرحوم شیف در رسائل دارن با این فرق می یعنی باز این می شه که در حد اقتصال امتقیشون در این شه او برده خود مرحوم شیف از دوتا عبارتشون مختلف ظاهرن خود حساس و ظهور به خود جفت حالا حساس الحقیقه تعبودن معلوم نیست عبارت ایشان کنگی عبارت ایسا پیش و کلام باید در حد ظهور برسه تا حجت ماشه. نسبت به تفاصیل در بحث هم ایشان متعرضه کلمات غلم های خود ما شدن در مواحث حساسی رو اون که از احلام خونه ما متعرض شدن و از بلا حاضر تاریشی گفت از قرن دهم به برد میشه محوم شیف متعرض کلماتی شدن من اجماع بخابلی علمای کلی مبحث شیخ رو خدمتون ارز بکنم متعرض کلماتی شدن که در میان علمای ما از قرن دهم مطرح شده اولی میشن محومه محدث استرابادیه مولا محمد امین استرابادی صاحب معالم که متوارد باهم مأقوم صاحب معالم ایشو متعرض کلام صاحب معلم شده و در خصوص اصول به طور کلی به صاحب معالم نسبت داده شده که زواهد نسبت به مشابه کسی که مشابه انسانه محل مخالفه انسانو بود که نه یه تفسیر دیگه هم به صاحب معالم نسبت داده بعد مسئله ملا محمدانی هم حجیت زواهر کتاب رو زیر سال برده این است که یواش واش بسا در دنیا شیعه وارد شده یکی این که زواهر نسبت به مشافه از مشافه کلام مخاطب وجهت باشه این رو هم مرمو شیخ اوبرده از حواده سآل ماله مرمو آیه کوی دیگه نحن نکنه عبارد صاحب معالم و به جان هست حتی شیخ احتمال دادن که این عبارد صاحب معالم اون اصل کلام محقق قومی هم این باشه از کلمان دیگه بارای تفاصیل نمیشن درده از این کتب مفصله اینها رو بردن من به نهر فهرستوار حالا خدمت آنه از میکنم پس یکی تفصیل صاحبت... معالمه که دو جورم نهر شده یکی تفصیل ملا محمد امین استرابادیه از خیلی مرحوم شهر کتاب مولا محمده این پیشیشان نروده لکن از کتابی که ایشان نرود میکنه هاشیی مرحوم ست فدردینه به نظر قومیز اسطلاح حسین حسینی که یک شرگی هاشیی بروافیه داره باقیه از اصول مرحوم فازل تونی تا اونجایی که من می‌دونم خواب نشده یعنی صورت هم خودم مراجعه می‌کردم اینو سهی مراجعه کردم لیکن ظاهرن نصر اشتی ها رو شیخ خودشون شیخ انجازش نرمون کنن از شرق و وافیه نرمون اما از کتاب مولا محمد امین استرابادی نرمون نرمون کنن پس یکی مطلب اخباری هاست بعد مطلب که مغموم ریزای قومی فرمودن من ظاهرتون اول برست بکنم شیخ نرمون کنه شیخ مختصرش برمون کنه موجبی ای این قلط قلطیشان نرد کرد بقیه مرفسیشان نقل نکن و مرموم ریزه گومی هم در جل درون هم ون. در جل درون درون سه اشتاد تقلیل متعرض این مسئله شدن و غیر از اون این دو سا اینیس سه نفر از بزرگانی که اشتاد متعرض شدن از مرموم نرز از مرموم کلباسی آلیم داریم کلباسی پدر حساب اشارات یا پسر اشتارات به نظرم باید صحابه اشاره از من کلباتی هم این تفصیل نهارو کردن که آیتون اینجا اشاره بومی کردن که مثلا زنه به بفاق شد این زنه به بفاق و عدم زنه به خلاف بهم مرحوم شکل به عنوان تفصیل نهارو کردن این سه چارتا شد سه چارتا شد متعرض کلام و استادشون مرحوم نراقی هم شدن در زید کلمات اخباری ها متعرض کلام استاد دیگرشون مرحوم سید محمد مجاهد هم شدن در کتاب مناهج مناهل الوجود این مجموعه مباحثی است که مضمونش که تبع مباحثی یک نوعه است از اون محضاری است که استاد در این جمعان فهمیده در تفصیل و انصاف از مجموعه کلمات رو که انسان با دقت نگاه میکنه خالی از نوع ابهام نیست یعنی روشن نیست حالا ما قبل از که وارد این بحث بشیم یه توضیح رو و در این مسئله یک مقدار روز او کتاب بحث شده این از زمان این اقوال رو که شیفو آورده تماما از قرن ده تمام اقوال و تفاصیل اونها از قرن ده و مجموعه این کلمات چون این خیلی مؤثره که بدون چی بوده چرای میگیری شد این تفاصیل پیدا شد مجموعه این کلمات هم در دو مجوره اساسیه. یکی به صورت قرآن و کیفیت تنسط به قرآن و کیفیت دلالت و آیات تون اصل این بحث که قرآن مصدر اصاسی تشریعه این جربت نیست این اصل این بستی بحثی جربت نیست انم الکلام کیفیت استدلال و کیفیت استظهار به قرآن برای احکام این مسئله خب قایی نخالی می از همون اوائل از اهد صحابه مهند اشکالی بوده این از هم او صحابه که مثلا ما در کیفیت احکام امین وینی قصه معروف که ناماد امروزه شعر خوهر شعر خبرو بود او که هدی جایی بکنه اختلاف خود او می گو که آیه او برده که داره لیس جمعان علاله از این فی انسان اگه متقیق باشه هر چی خود اشک و ما درباره خنق ندریم خدیجه اشروش منم متقی از امام شرو کرده اشتاق در همون اباء تمسک که یک لوادر کتاب حتی تا این حد که مثلا شراب خوردن خیلی خلوق باش در میده یکی از الزمین تقویم و تعیین این چیزی شناح نیست که گناه ما در ما متقی از امام شرو کرده حدی هم در قرآن بیان نشده پس چیزی برمانه این تصویر کار رو ببینید این مسئله از همون اول البته خب در لسان آمالان علمای ما معروف است به کلام اون شخص و هر انا کتاب الله از این حسب انا کتاب اللهی که اون گفته احتمالا این اصطلاحی که ما الان کار می‌بریم چون نمی‌دونم متعلید از کلم بعضی ها همین الان خیلی تندروح شدن معترضن احکام رو فقط از قرآن در بیاریم از قرآن هیچ بردی استفاده نمید نه <تصحنت> شو روسته نماز زوه رو اشار قبول داریم با صبح هر صبح محرم ثابت میشن سه تا نماز رو خود پنج من میشه پنج دار چون اقام اون صلاح به دلوکی شمس یکی دلوک است یکی قبر است که یکی هم آرهان الفرگی میشه سه تا دیگه ما پنج تا نماز نره. پر ده شده دیدم این راست دلوک یا بعد صلاح تو وستان هم بله صلاح تو وستان هم داریم کفت صلاح تو وستان و پنج نماز بهمون شده. بر تفسیر سالات و سالات و سالات ده قول بیشتر داریم چون ما زیاده زده تو بحثتان زیاده بارد اون بحثی مکان بشه. حالا یا حاله بنابراین این می کنم یک بحثی بود این حس اونا کتاب الله احتمالا چیز دیگه این مرادش باشه این, این که الان به ذهن ما هست نیست حالا من واجهی بحثی میکنم چون شانا تو بحث خبر شاید این اوزای شب اجب. بیشتر اجبیم پس این یک بحث اساسی بوده اون بحث اساسی یک بعد از اینکه که ما قبول کردیم قرآن با عنوان اصلی ترین مصدر تشکیل در دقیق مقدسه هست این در کیفیت استظهار از قرآنه الان هم متعصفانه در بحثای اصولی ما حالا فرصیم مثلا به سوره اسکاندار همین کتاب چی خواهیه یا کتاب های مثل، محبون کتاب در کتاب‌های استاد مسعر طلاس مرحوم داریم اصلا یک فصل خاصی راجع به کتاب نداریم در کتاب‌های اصول قدیم اصول اهل سنت و شیعه حتی خامس معالم اصلا یک فصل خاصی راجع به کتاب بود که در شواهد نشر و تخصیص کتاب و ازده از مباحث در اونجا مطرحه الان در کتب ما از مباحث قرآنی که در اصول فقه فقط همین بحث حجیت زوائد کتابونام اینجا بحث میکنه ما دیگه راجع به آه. کتاب و مباحث کتاب چیزی مستقلاً تو اصول نداریم الان اینطوری شده از اصول ما مستقلاً راجع به آیات، حقیقت آیات مکی مدنی، کیفیت استنباط حکم، حقیقت احکام کتابی، حقیقت تخصیص در کتاب آیات ن... دیگه اینا رو الان در بحث حجیت ما مطرح نیست در اصول خب حقش همین بود که جزاگانه مفرح بشه اما الان مفرح نیست تو اصول ما تو اصول الان که ما میخونیم در حوضه های شیعه خودمون فقط حجیت زواهر کتاب را متعرض میشیم اونای تو زید بست حجیت که الان داریم متعرض مستقلاً راجع به مباحث کتاب در نقصی که کتاب در تشریح داره و خصوصیاتی که داره اینجا همین مرزاری که بسید که علمای ما در اینجا انجام د که در خلال بحث آیندن رو روشن بشید پس یک بحث اساسی این موده این احساس به شیعن نداشید این انواع مختلف بحث ها میان اهل سنن زیاد این بحث بوده و شراعن احس کردیم که در منحیت مجموع در کل فقه اسلامی به آیات کتاب بیشتون مقداری که ظهور فقهی داره تمام سفرده آیاتی و در فقه بودن که ظهور در نداره نداره مصال فقهی خب این یک مشکل یک مشکل هم در روایات ما بود به خاطر اینکه اکثر روایات ما یعنی مطالب اذهبی به صورت نوشکاری نیست کتاب نیست تعلیق نیست ما مجموعه نامه‌هایی از عینه داریم که بعضی‌هاش مطالب به اصطلاح تحقیق اونها در راجید و عقاید هستیم مثلا خیلی از محل اشکال هست خیلی از سندن محل اشکال جهات مختلفی داره اونی که ما الان اکثرم داریم به نقره سمایی اکثری که ما داریم. و مشکل دیگرش هم سما در مدینه بوده تدوین در کوفه بوده ما میتونیم افرادی خدمت امام ساده رسیده هم مثل معایت نعمار کتاب حج داره همین الان هم ما اگر روایت معایت نعمار در باب حج از کافی و تحضیب و اینها جمع بکنیم همین الان تقریبا یه مناسق میشه یعنی خوده که مارده لعن ما اینقدر همه ساله مونده کتاب اگر مجموعهش جمع بکنیم همین الان یه مناسق یه میشهده یک هایچی بدیم هج داره تقریبا یه دوره مناسق خوده این کتاب مارده لیکن الان برای ما دقیقا روشن نیست آیا اینو در همون مدینه خدمت امام نوشته یا عرضه کرده ی مثلا ما کتاب صلات حریز داریم که کتاب های بسیار بسیار مهم بشی از از, از همین الان هم شاید مثلا یک چهارم یک پنجم سلات ما در کافی و تبدیب و بقی ما از همین کتاب حریزه همین الان لیکن افعال این کتاب در مجینه نوشته نشده. خود مرحوم حریز ابن عبدالله عزیزتانی عد اکروفر سیستان نیست چون تجارت بشته به سیستانی هستمی و به سیستانه گوه خود مروه عریض بن عبدالله سجستانی در کوفه بوده خدمت امام نرس امام رو دیده اما خدمت امام نرسیده تهمه حدیث از نکرده از شاگردای ایشون جمع کرده این مجموعه رو جمع کرده ما یه مورد داریم که حماد بن حازل صادق میفرمازد من امی اخذ کتاب صلات کتاب حریز صلات بعد از من انشاء الله دستور خیلی کتاب قطعا موثره اسان دیگه کتاب رو کم جنبی و هرگز ذره ازش. راجع به این داره نبض ورهمان ذره کرده سه. هادی همین نگاه آتره همه در ورد برساند رحمال لابی موسی و, و آل آستری. مثلا راجع به این کتاب ارزی برای امام مطرح نشده. اشمالش چرا گفته شده که از یک مشکل در وایات ما این نکته ای که پیش میاد. اینه که محل صدورش یک جا بوده، محل تبلیغ شایدیگه بوده. بعد به قول آیان تقطیق شده یعنی گاهی این تقطیق تحمدی بوده به این معنا که مثلا ما این مثال در فیقز در, در اصول هم زدیم در بحث تا گاهی اینوشی یک حدیث هست مثلا بی سخت بوده به این با مثال مرحوم کولینی مثلا نیمه حدیث قبول نداشته اونش مرحوم کولینی اول و آخر حدیث رو حدوده و رو کرده شون قبول نداشته اما مردم شیعه حدیث رو کامل بوده و به عث همین مقبوله معروف و عمر بن انزله که حتی الان هم دیدم بعضی کتاب و چاپ تازگی میارن چون مأمون صاحب وسائل میشه رواه المشائخ و, و, و سلاسه که هم مأمون کلهی هم امرو صدوق و هم مردم شیعه ما توست موثری اینطور نیست صدر حدیث که به اصطلاح اموزه‌ی امام ما برایت فقیه کله شیخه صدوق نيز بوده شیخ صدور نیانه حدیث رو بوده اصلا صدر حدیث رو کلن صدور نیانده شون توش مسئله ولایت بشه ایشون قاضی تحکیم رو قبول داشته ولایت رو قبول نداشته قاضی منصوب رو قبول تو سهل توصد قاضی منصوب رو قبول نداشته لکن فرقش با آقای خویی در اینه آقای خویی فرا حدیث دریفت سندن چون ما مرم هنده توصیح بد شده حدیث رو از اول صاحب صادوق در ثواله، در حدیث عمر بن نحضر سه بخش داره. اولش در بحث فقیه، دومش تو آرزه تو فقیه کشوار، تو در ثوال و سوم تو آرزه روایاته. کل روایت عمر بن نحضر سه بخش داره. به نظر کامل هم مرحوم کلینی آوردن، هم مرحوم شیخ طوسی. حتی تو سر با هم فاوا. اما مرحوم شیخ صدوق بخش اول رو نمی آوردن. هم بخش اول که ولایت داره که نمی شواهد هم نشون میده که ایشون قالب قاضی منصوب نیست دقیق کرده این خب یه نحوه من مخواهد الان اگه بخواهم اونقدر از این شواهد هست که بعضی شعجو بابره حتی بعضی از بزرگان بیان در مرمون صدو تقنه زدن که ایشون عمدن رو باید رو قرد کرد کرد و خراب کرد و به هم شد نه اونطور نیست. اونطور نیست اونطور نیست متعارفی بود در اون زمان که اگر یک بخش رویات قبول نداشتن بقیه شو می اون یکی که قبول نداشتن نمی حالا مثال ها پر نه احلاسات می این مطلب پس یک مطلب ما راجع به قرآن بود یک مطلب راجع به روایات راجع به قرآن این که ما مستقیمن یک حکم رو از قرآن دردیم خب کار مشکلیه دیگه نمیشه این کالشه حتی آیاتی که یک تفسیر زیادی دارن. مثل آیه لیکن من حیث المجموع با روایات و با شواهد دنگان بعد ایک و عمل اصحاب و اینها اینا استنتاج رو حکم خوب دقیق کنید مرحوم محقق قومی یک حرف لطیفی داری این حرف من در خلاف بحث بودشه اشاری کردم این ساله برزن اشاره میکنم توضیح میدم. ایشون میگه اگر ما یک حکم رو از مجموع آیات و رایات و کلمات اصحاب در بیاریم این دلالت نیست این از باب دلالت و حجیت ظهور نیست این مثل رو در خلال بحثاشون تو اشتاعت تبدیل داردن شیخ هم تو رسائط یه یک سکر این عبادتی شد خیلی دقیقه این عبادت محقق قنون سگیده میگه ما یه بحث حجیت ظواهر داریم یه بحث نتیگیری نهایی از آیات و مجموعه رمایات این بحث مقام دلالت نیست این چه گفت دلالت ما یه نتیجگیری نهایی از مجموع آیات و رایات و اجماعات ها تقدر کردیم این دلالت نیست، این حجیت ظواهر نیست پس بنابراین ما در حقیقت این بزرگان ما دو مشکل اساسی داشتم یکی کیفیت استدلال به آیات خب طبیعتاً اینشالله در بحث حجیت زواهرم عرض می کنم خود شیعه روی ادهی از جه ها کمتر به آیات مراجعه کرد. من است هست. تمسو که به آیات در کلمات و قدم شیعه تا زمان اخباری ها هست. اخباری ها به شدت ایستادهی کردند. در قبل از اخباری ها ما علماء ما به این عنوان که مثلا اینجا تخصیص خورده. اینجا بر سنت توضیح داده شده. اینجوری برکش میکردن. همین بحثی که عرص زن مثلا خانه از شو... زمین شوهر خب اینا اشکارش این بود که آیات کتاب مطلقه ارت زن تغییر نداره به زمین از اون ما چیز داخلی 17 تا رواید داریم که زمین ارت نمیبره از زمین خب... واقعا سنگیر این صحباتی یکی و دو تا و ستا نیم 17 تا روایت که بیاد دیگه ارت نمیبره عقل بنایه اصحاب خب روشن بشه که این شما الان در کجای کار هستین؟ چه میراثی به شما رسیده؟ و الان ما با چه کار بکونیم؟ بنای اصحاب به این بود که آیه اون‌وراست که اطلاق داره، روایات تخفیض دادن. بنای ما این بودیم تعیید و تفیید و تخصیص در سنت در روایات آمده. و اهل به عنوان شارع و مفسر قرآن، اینها تخفیض دادن که زن عزمی بودن. احباری ها مَسلک رو عوض کردن. اصلا اونو آمدن قرآن اطلاق نداره به جیالوگی اطلاق ترین خورده موشن یعنی از قرن دهم این تفکر در شیعه پیدا شد که اصلا قرآن اطلاق نداره که ما احتیاج به تحیل داشته باشیم. اما کردیم اصل بحث و اخباری ها نه حالا آیه ایرس مثلا اینجا چطور شد چرا فوقایی جو با ظهور اطلاق آیه اصلا اونا بهش که بیان مقدمه بحث بکنن، این میگم خب مجموعه کارهایی که در ما شده. اخبارها برای حل این عریضهام بودن گفتن آها اصلا اسلام کتابی حجت نیست، عموماً کتابی حجت نیست. مثلا زبان کتاب حجت نیست این زبان چه اطلاقه؟ چه امومش باید برگردیم به روایات. روایات چاره‌ای هیچ پس اگر روایت آمد زن از زن از زنین ارسانی زن بره بحث تحیید نیست قرآن قابل تمثب نیست اطلاق قرآن قابل تمثب نیست شما بخواهیم بگیم تحیید نیست دقیق بکنی کار مجموعه مجموع کارهایی که شده خب طبعا بعضها که اصولیم باز جریان برگرشونه به اصولی وقتا از آمیزای مرحومت بهبانی اینا سهر کردن بگن نه ما حجیت کتار را قبول میکنیم و این تفاصیل یک لفه یواشواش پیدار یعنی در حقیقت در شیعه یک نوع طوفانی شده بود. اخواری های پیدا شده هست. گفتن ما قبول نمی کنید. در مقابل او آمدن مثلا پس مرحوم محقق قومی. گفت بعد بله مشکل داره مثلا صاحب مشکل داره مشکلش اینه که باید ما با آیاتی که مش... برای بله مشافه بجرده بحثی که مرحوم محقق قوم داره داره من قصد افهامو اختصاص به روایت نداره جو درباره ظواهرم گفته. چون یه زبان کتاب برای من حاصل اقامه حجته، برای که کلم یگسر اقامه حجته نیست. مگر این که که یوز در جواب آیه کنی، قبول می‌کنی که آیات یا روایات از طریق تعاریفات مصنفینم که کردی، چون از درکونه حجتی که عیناً روشن نیست. این روشن نیست که این از طریق تعاریف مؤلفین و مصنفین باشه. روشن شو مطلب رو توضیح بدم. پس یک بحث راجع به کتاب بود که علمای ما به طور طبیعی به عده از زواهر آیات تمسک رو کردن بعدم اگر مخصصی مقیدی در رواب بود موتایی تقیید کردن پسید راحت بودن رایی قرار هست توی کتاب شیخ سوسی هم هست اصلا شیخ سوسی اولی تحضیم حالت استدلالی داره تقدر روایت نیست در حالت روایتش کرده حتی تو با آیات تمسک میکنه یستالا به قولی توالا این متعارف بود داره غیر از دیگه رسمشون بوده سهل مرتزام در موادسی زفیش همینطور چه؟ مفید داردیگران یه متعارف بود در زمان علامه شاید مثلا بیشتر شده زمان شاید و این راه این بر اثر یک جریانی که پیش آمد از قرمه ده به بعد. یه دفعه جمعی این مفلت در عالم شیعه این کار هم شد در عالم احل سنت نداری اینا آمدن نیست. و این مواحصی که تفاصیل دقیقا که من نفیل خدمتون هستم تمام این تفاصیلی که آمد تو حجیت ظهور من خوصد افهام و من کانو موشافن من کانو تمام اینا از همین زمانه این یک بحث یه بحثم راجعه در روایات در خصوص شیعه مقدر شد چون خب شیعه روایات میوبردن کتاب مشروعی هم بود مثل کافی و تحریب و استفسا و بداخلی کسانی که خبر را قبول نداشتند که معظم شیعه بودن تا مخصوصا بعدها تا خط متکلمین اصولا متکلمین شیعه حتی بعدها متکلمین و مفسرین امثال مجموع بیان شکر بردو رازی و از متکلمین امثال تاستن ابن زغده و مرحوم حللی صاحب کافی و خاربانیه این بزرگان متکلمین و خط مفصل. مرحوم قطب راوندی و مرموم ملا محمد عبدالجیل رازی و اینا اصلا قائل به حجید خبر نبودن خود مجموع بین از تصالی سوال به خبر نیست اینه این که قائل به خبر نبودن که تقریبا به لحاظ تاریخی می کشه تا حدود سالهای 16 قرن هستون تا قرم چارون پنجون کسا متعارب به بغداد بود اصلا وقتی میامدن علماءی سنی آرائشی ارنفرون کردن اما در تصویب اهل سنت تو بحث حجیت خبر روافض رو به عنوان منکرین حجیت قرار زن و زهر به روافض روافض به اصلا تو کتاب حسول اهل سنت ماها جز منکرین حجیتی ماها جز مصبتی محجیت نگوردن به خلاف اونی که الان پیش شما مشهوره عرض این اون وقت این ادامش تا حدود حسومه کسانی که اولین بار در دنیای شیعه متن و چیز خبرو تعبدن متن شیخ طوسیه دلیل شیخ طوسی قدس الله نفسه به خاطر اینکه خودش هم که خود مقام عمل دقیقاً این راه رو پیش داشت یه مجموعه ما بین حجیه ناوین اخذ به قرائن و شواهد بعضی از شون هم از دید ابن ادریس شون که به شدت مخالف بودن قبول نکردن بعد از ایشون هم مثلا افرادی مثل محقق دیگه انصافاً مرد فوقل عادیس محفظه هیلی ایشون میگه نه هر خبری که شاز باشه ترهش از اصحافش قبول کرده باشن قبول توی بحث معتبر هم داره توی بحث این کتابی در اصول داره مارد مرحوم محفظه این باره میشه در معتبر مقدمه معتبر یک مختصری از اصول هم داره مقدمه مختصره. در از هم دقیقه اول مرحوم شیخ توسیست لشک دیگر رسمی حوزه های ما علامه هلیس رسمی تو حوزه های ما مرحوم علامه هلیس این چه دیگر دنبال خبر و اولین من من خوب اولین کسی که در حوزه های ما آمد همون موابس خبر رو تو ف تسبیح کرد در فیخ. مثلا نگفت این روایت در بابسالله سریعه این روایت موثبه این روایت حسنه این روایت زعیده ما قبل از علامه نداریم اولین کسی که آمد همون مباهیسو تو فیق و قبض تطویق کرد مرغوم علامه حسنیس قدس الله نفسه توی مختلف رغیره رویت صدوق صحیح، رویت شیخ پستهی اینطوری یا رویت شیخ الحسن رویت شیخ الموثب و اولین کسی هم که روایات رو عملا از دخصه تخصیم بندی عملا توصیف کرد که این صحیحه ضعیفه اونم باز علام هست. خب این کار کهی شده علام متوفای 726ه یعنی عوائل قرن هشتم تصور شده بود این کارهایی که علام کرد در میان اهل سنت اواخر قرن دوم و اول قرن سوم شده بود یعنی ما یه فاصله 5 همه با اونها داریم دیگه اونا از سالهای 182, 200 و 220 دیگه شروع کرده که این حدیث صحیحه این حدیث صحیح نیست که اوجه کارهایش هم مثلا بخاریس که جامعه و سهی نمیشه متوفای 25 و 6. این اوجه اعلا شد 25 و 6 رو در نظر رو با کارهای شما اولین بار اگه دقیق کردید مطلب اولی بخون در شیعه این که تقسیم حدیث غیر تقسیم حدیث عملا بیان بگن این حدیث تو این باب صدیه این حدیث صحیحی این, این حدود قرن هشتم صفهوسی زمانه حالا معلومه شیخ طوسی از قرن پنجم شروع کرد موجز خبر مترافع کردن خب بعض مثلا اینکه زودتر از این میامن از کنشون شهر توسی از یک طرف خود شیلی مستقیم رو این بحث خیلی مایه نگداشت و نشون نداد بعدها مثل ابن دیگه حتی مثل محقه موافقت نکردن این طرح جا نگد اما توسط علامه جا افتادشون تقسیم بندی ربایی معروف رو مطبع کرد حالا این جای خودش تقسیم بلی مهمی سنه زد. اولین کسی که در علم حدیث آمد تو حدیث مثلا مرحوم علامه اولین کسی صحابه گفت صدوب صحیحه صادوق به فلان صحیحه کاربرد به فلان ضعیفه تعریف این کارو ما قبل از علامه نکرده کسی که این کارو کرد علامه دهندم خب این من علیه سلام از کردم این چون از سال 150 و سال 60 کلان اشاره کرده، اونام شروع کردن یعنی عمده بحث این بود خب دقت کنین اسمش من گفتن تحلیق عمده این بود که ما از سال 150 تا زمان رسول ها چی جور برسیمون سوال این بود سوال عمده تدریم پس این مثلا موفقه ماله 150 50 نرشه شده ما از سال صدقان که می کنم اهمه رو می خواهم توضیح اجمالی هستم تفسیرشیم توی جایی دیگه احل سنت یک مسئله یه حصول فرق خودیت خبروان و از جهت رجالی روش کار کردن من اینکون توضیحاتشو مفصل دادم حالا فقط اشاره بعد بزیاد نهای مزرگ وار احل سنت وقتی نگاه کردن دیدن از کلمات صحابه نوشتار ندارن خوب دقت بکنید مثلا بگم ما یک نوشته از عمر داریم از برکت مالا مثل خودشون از علیه ابن ابی طالب داریم از... نداشتن خیلی محدوده که این تا توزیاد یه کنه. ارزم کنن سالوانم هست خیلی محدود لذا اگر میخواستن دیان رو نوشته ها حساب بکنن چند دستشون حدیث میگون آمدن رو راوی حساب کرده. این شد اسمش تحرید رجالی اصطلاح بنده یعنی کاره یه دیگه تحلیل رجالی نداشتن تحلیل رجالی تحلیل مجموعه عملیات ذهنی که ما بخویم رجال رو قبول بکنیم نکنید تبقیه درست مجموعه این عمل ذهنی ماستیم تحلیل تحلیل صلاح خودم اینجا این شو تحلیل رجالی بکن؟ شیعه از سال 150-182 سال تمام رسول الله با یک مسئله کلامی حل کرده اسمت اعلمه علیه این که شما فرمونید سوال فرمونید ما دوتا مبناست این اصلا منشأ این شده که الان اده از علمه های اهل سنت وقتی مثلا میان مبتع مالک یا کتاب های دیگر بررسی میکنن میخوان بیان با فقه شیعه مقایسه رو مشکل اساسی اینه اونها به یک مسئله اصول فقه مراجعه کردن ما به یک مسئله اصول اقای مراجعه کردیم این فاصله زمانی ولیزا دو منحجه دو روشه اونا با مسئله حجیت خبر مسئله رو حل کرده هست درسته چی ما ماها با حجیت قول به عنوان معصوم و به عنوان منصوب من قبل الله من قبل رسول به این عنوان بررسی کرده سال سال نه چون ساله تدوین اوناستی شروع شد از سال سال پنجه از سال ۵ چون اولین کسی که نوشتم در اام و رجالی که فرانسه رزین ش و شدن حجیجه آن تعی 16 که سال 16 زمان امام مصبت جهه یعنی از سال ص۵ یبا شد چون تا اون زمان بررسی نمیکردن بودان فلانی رو حدی س وقت اف به تفیش اول و منفشن احوال رجال تعیش میه اول که ریشه بحث رجالی در دنیا اسلام همین سال سال و این شعبت اونال حجاج اهل بسره است. نه کوفه. هم بشه امیر المامونی میگه. میگم. من کارز بسره نشه میتونیم من خواب بگم که این بحث حجید زباهده چه تو دنیای شیعه از سال قرمده هم شکل گرفت. این ریشه های شوشن بشه تا در نتیجه گیری بشید. اون وقت ما در کهی فکر شبیه کار اهل سنت به فکر تدریم افتادی فس این سالهایی دیری زمان از رزا زمان از شما وقتی که از حال ما به فکر تدریم افتادن خود دقیق بکنید مثل اهل سنت نبودن که بیان بحث رجالی بکنن اون وقت از عیمه متقدر کتاب داشتن اینه که از امام صادق بود اینه که از هم باقر بود کتاب مثل لذا شیعه تدریجن بحث رو فهرستی کرد. عصر جالی هم مطرح بود که بنده اسمش اصطلاحاً تحلیل فهرستی بذاشد یعنی <تصح> آمدن روی کتاب ها این, این نحره فهرستی که الان مرمون نجاشی داره سنیا نداره. چرا شون نوشتار موجود بود تا زمان کولینی تا زمان شیخ صدوق شیخ صدوق در اولش میگه جمعی اروادات این کتاب از اصول و م... از اصول مشهوره که علیه ها علفی علیه ها بین مشهوره بینالعصار بعد این که این مرده از کتاب هاره اسمی برسه میگه مسادر من این این این و غیر راله که منال اصول لن مصنفات بگره منال اصول <s, صفح> یعنی اعتماد اینها وقت با این حساب برای شما روشن شد علامه که آمد تحلیل بکنه قبول خبر رو دیگه زمان علامه اون اصولا مصنفات نبود در قرن هشت اوم اون اصولا مصنفات نبود علامه چیکار کرد؟ رفت باست به تحلیل روشانی یعنی <صحنت> همون کاری که اهل سنت اواخر قرمه دوبوم کردن در دنیای شیعه علامه در قرمه که مثلا اخباری ها خیلی تن میشن در علامه حتی شنیدم من خودم تو فواضب مدنیه نیدم که در به این تندینه که شیعه در دو روز به اصطلاح و خور تشیع ولایی که روز صحیفه یک اون روزی که علامه این اصطلاح رو کرد از مولا این تندیه هایی که این در واقع این نبود این بحث اینطور نبود بحث تندی که بحث علما نیست واقعا علامه وقتی آمد بحث بکنه دیگه الان دیگه چاره ای نیست باز برگز به تعریف نحوه کیان اساسی این داستان اینه که سانید موثق هست و حسن با حسن مخالفه. تا چه نه در دیو نامه کتاب محترم که پلیشون سرنوشت فعلی استفاده میکنه. نه دلیل رو که قبول نمیکنه. موثق را هم عباراتش مختلفه اما سانی رو قبول میکنه حسن هم متوسطه. به حسن میگه اگر معارضه باشه باشه قبول میکنه ملاخرا. باشه. میکن. بخ... نه. نه. قبول دارن این اصطلاح بندی این اصطلاح به حسب چی خوره به حسب رواس می خوره رجال می خوره یعنی به عبارت دیگر خوب دفت کردی علامه رو عورد به تحلیل رجالی همون کاری که سنیه ها در ون دوم می کردن رو عورد به تحلیل رجالی چرا چون سن اهل سنت نوشتار اختهابه نداشتن از سیغمبر نداشتن راهی غیر از تحلیل روش هست نکات خارجی حالا تعجب اینه اون البته واقعا هم برای ما تعجب مثلا اندامه در مختص اونجوری که یاد من هست اصلا چه یک که من تعریف کردم تو ان شاء الله یک موردی از کافی هم نقل نمی‌کنه میگم چرا می نمی‌گونه از صحیح نقل نمی‌کنه از سند خب از زمان علامه این بحث شد که ان در بحث‌های آینده توضیحات بیشتری از, می از بحث بحث این می‌خاستم توضیحات بحثی این این بحث شروع شد. یواش و شواش نقطه دیگری که در میان اهل سنت این بحث ها از هم قرن دوم شده بود. اواخر قرن دوم اول قرن سوم تو قرن سوم و چهارم بحث ها با این اهل سنت خیلی شدیده. مقایسه متون با هم دیگه، مقایسه اثانی با هم دیگه، صحت و ضعف این کارها هم متأسفانه از قرن دوم در شیعه شروع شد. این مقدار دیر شروع شد. یعنی پس مثلا علامه یا می میبود از سرزی رد میشن یه یعنی ها شاش آن دیدن آیون مثلا کافی رو مقایسه کردن دیدن مقن سرزی با کافی فهم سنده این با اون فهم از اولین اولین که سینتی در علمای ما متنبهی نیست من میکنم سه تاریخی دونیم چون توش بیژه رسید کار متنبهی این کار شد مروم شیدستانی در درایه خودشه من ندیدم راسته اول به نظر کنم. یشو میگه در تحضیل نقل نقلها فرق و مقارنه کرده حالا الان مثلا 200 سال قبلش این کارو نمیکنه نمیگه 200 خوردی سال قبلش شهید سانی در درایه به این نتیجه اینرسه که نقلهای شیخ طوسی فرق میکنن یعنی چی شد خود امالاً مقایسه همین که مرحوم محقق امیتی ماور گفت تحقیق در ورثه رسوله از قرن دهم ده مقایسه شروع شد اصلا این کار تو تو اهل سنت در قرن سوم در اوجش هستن واقعا در اوجش سوم و چهارم در اوجش در روایات ما اینا طوسی شما هست که ما مشکل واقعا تریه داشتیم منابع ما خیلیش از بین رفته بود ما مس اهل سنت هم بازار علم اونها بود مال ما نبود چیه در فشار بودن در تضیعه بودن لذا مجبور بودن به مقادیر اقلی بسازن و اون رو با خونه دل به نسخه های چیه اون زمانه مثل الان که مثلا ما در یک نظامی هستیم و مثلا راحت صحبت می‌کنی با ساده این جور نبودشال تاریخیش هم در ذهنتون باشه بعد از شهید سانی پسر ایشان صاحب معالم برای اولین بار تونجه که من می‌دونم بازم میاد میتونم که یاد می‌برم عملاً این در مترجمان مقایسه کرد مثلا این حدیث سعدین ثوری در کافی اینطوری داشت اما متاسفانه مقایسه‌تون در احادیث سحاح و حسان بود مبصفات و از دعاق رو مقارنه و ای کاش ایشان ای کاش واقعا بینر بینر یک دوره حدیث کامل رو ایشون مقارنه می کرد تمام عادیث چون ایشان می فرمان شیخ سوسی به خط ایشان پیش من ما آخرین کسی که خبر داریم که تحضیب شیخ به خط خود شیخ پیش ایشان بوده مرحوم ساب ماله پسر شهیدستانی یعنی این می این کار اهل کلام در سونیا خیلی قرف شد کار الان هم که ما در بحث فقهی اومیم تشریح نمیره اصلا کار ما همینه. اما متأسفانه با عنوان رحلی در روزهای ماشاد علما مثلا در درس‌ها درس بررسی میکنن اونی که ما به صورت نوشتاری متن صورت مکتوب عرض میکنن نه بحث های خودشون مثلا تو بحثایی که مقایسه میکردن کتاب کتاب داشتن اینو مرحوم صاحب معالم مطرح کرد خب معلومه که احادیث سموظیات دارن سندهاش هم زیاد دارن جروع عقب داره و این عرض کردن دیگه وقت تمام شد فقط همین کلنه این یواش هاشونی از زمان شدیستانی که 900 خورده و و از اون زمان بگیرید تا صاحب حدائه این اینقدر در شیعه روش کرد که دیگه اون عبارت مشکول رو که متاسفانیدم ظلمه در حفظ شیعه توسی صاحب هزار که مراجعه ازیاد کرد دیگه خیلی اون بر افتان اون خلی ما تو جد روایتون خلمثمن از زیاد عد النبیشه از تصیف از تحیید سنداً و متناً اندیش. اصلا ما کلا بی که شیخ یکی از این خبابیاش بیش اجازه نکرده یا سندش یا همه رو به هم می‌خوره. و البته این انصافاً ظلم یعنی ما با هیچ مروم مح... صاحب اداره اخواری می‌دونیم و مرگ دروغی هست. به نظر من شما دقت نکنید. شأن شیخ اجل به مراسه. اینو در حق بچه‌طلبا مت شما که گفت. چون که به حق مثل شیخ خطایفه قدس الله نفسه که قلماتو جد و اندشه سلامت من از زیاده عوه نقیزه عوه تصحیف عوه تحریف سنده اومد من چند با ساله های این عبارت داره تا اونجا هم کنند دیم سنیه معاستم که خیلی سریم کنند ارهیم رو بینیزد ظاهران نگه میعبار ساله های خدا خدا نگه میعبار ساله های و نیم باشید که از اول سوشت شد این مقارنات که آمد که اوها میدن محقق قومی و دیگران که مسئله تخصیل پیشون گمده شد این یک سیری داره در تاریخ تفکر شیره و بقیه شردان شده و سال الله علیه محمد و حالیه تا